تنها چیزی که بوفالوها میخواهند این است که به حال خود باشند در امنیت بچرند نوزادانشان را پرورش دهند و در آرامش زندگی کنند اما آرامشی در کار نیست آنها بیرحمانه شکار و کشته میشوند کشتار بی وقفه ادامه دارد اما وقتی سرانجام صبر بوفالوها تمام می شود نوبت تلافی کردن آنها می رسد. با گله بوفاله های هرگز نباید در افتاد درست کنار پارک ملی مشهور کروگر یکی از بزرگترین پناهگاه های حیات وحش آفریقای جنوبی به نام مالا مالا قرار دارد که زیستگاه مشهورترین حیوانات وحشی آفریقا است این حیوانات از خشنترین حیوانات وحشی هستند و در میان آنها بوفالو از همه خشنتر است. با همه اینها بوفالو کاری به بقیه ی حیوانات ندارد و فقط دلش میخواهد در کلمروی خود آزادانه بچرد. در جله بوفالو نظم و هماهنگی جالبی برقرار است. تصمیمگیری در مورد محل چریدن بدون درگیری انجام میشود. تصمیم گیرنده ها معمولا بوفالوهای ماده هستند. البته چیزی به نام رئیس گله وجود ندارد. اما بوفالوی نریکه تجربه و سن بیشتری دارد موقعیت بالاتری نسبت به سایر نرخا دارد و این امتیاز تنها موقع جفتیابی به کار می آید. در حیات وحش جایی که آب هست خطر هم هست. کنار آب می‌تواند به یک قتلگاه بدل شود. شمار زیاد بوفالوها تنها عامل حفاظت از اون و هرچه به یک دیگر نزدیکتر باشند بیشتر در امانند با این حال هرگز کاملا در امان نیستند youngsters گوساله‌ها از همه اسیدپذیرترند اما امروز قرار نیست به آنها حمله شود شیرها فعلا نیازی به شکار ندارند چون آنها دیروز یکی از بوفالوها ها را شکار کرده و هنوز غذای زیادی برای خوردن دارند داخل گله اصلی دو گله دیگر وجود دارد که از بوفالوهای نر مجرد تشکیل شده است یکی از آنها گله نرهای بین چهار تا هفت سال است و دیگری نرهای مسنتر و بالای دوازده سال را شامل می شود که پشت سر نرهای جوان حرکت می کنند. این دو گله فاصله خود را با گله اصلی حفظ کرده و جدا از آن زندگی می کنند. بوفالوی نر در سه سالگی مستقل شده و گله اصلی را ترک می کند و پس از تشکیل خانواده دوباره به گله می پیوندد بعضی از نرهای موسن هرگز به گله اصلی باز نمی‌گردند زیرا توان رقابت با نرهای جوانتر و قوی تر را ندارد گله نرهای مجرد غالباً به علفهای تازه تر و نرم دسترسی دست بوفالوهای بوفاله که دندانهایشان طی سالها کند شده باید از علف نرم تغذیه کنند. اما علفهای نرم و تازه غالبا نزدیک آب قرار دارند که معمولا شیرها لابنایانها ها کمین میکنند نرهای جوان این خطر را به جان میخرند زیرا تغذیه از علفهای تازه آنها را قویتر ساخته و شانس پیروزی بر رقیب را بالا میبرد. گله بوفالو کنار آب مشغول چریدن است. تعداد گوساله ها زیاد است فصل بارندگی برای آنها پربار بوده است بوفالوها ممکن است آسود خاطر به نظر برسند اما آنها همیشه نگران شیرها هستند اما شاید اکنون باید نگران خطر نزدیکتر ولی نادیده گرفتهی باشند کروکودیل گوثاله ای را شکار می کند مادرش می خواهد نجاتش دهد اما نمی تواند. بوفالوها در آب امنیت ندارند در خشکی هم امنیت ندارند هیچگاه نخواهند داشت جایی که گله نرها مشغول چریدن است هیچ کروکودیل و هیچ شیری دیده نمی شود. زیرا فیلها آن دوروبر هستند و حضور هیچ تعمه خاری را تحمل نمی کنند و هنگامی که آب کم باشد حضور هیچ حیوان دیگری را تحمل نمی کنند آب و فضای کافی برای همه وجود دارد. فصل ها مثل همیشه تغییر می کنند. با کم شدن غذا، بوفالوها به اللف های باقی مانده در کنار آب روی میآورند. شیرها این را میدانند. همینطور ها و بقیه می خرند. پذیری بوفالوها بالاتر رفته و شرایط بدتر از این هم خواهد شد. فصل خشک رسیده است اکنون بوفالوها با حریف دیگری هم هستند. طبیعت که شرایان حیاتی آنها آب را میخوش کند رود قدرتمند سند به یک جوی بار تبدیل شده است پیدا کردن علف اکنون معزل بزرگی است تنش در گله بوفال و بالا است شرایط زندگی دشوار است علف باشد یا نباشد ها به شیر نیاز دارند و تا دوازده ماهگی باید شیر بخورند گوساله موقع شیر خوردن مزاحمتی برای علف خوردن مادر ندارد گله بوفالو در قلم روی خود پرسه میزند میچرد و کاری به کار دیگر حیوانات ندارد. اما شیرها آنها را راحت نمیگذارند. آنها همواره بوفالوها را زیر نظر دارند. شیرها آماده هملند <تصفيق> <تصفيق> گله رم می کند سپس ترس آنها به خشم تبدیل می شود. در قیبت شیرهای نر به عنوان پشتیبان شیرهای ماده مجبور به فرار می شوند. این بار به نفع بوفالوها تمام شد. اما بوفالوها فقط زمانی که کنار هم هستند در امانند گاهی بعضیها از گله جدا میفتند این مادر و گوسالهاش فعلا تنها هستند اینها هم همینطور و متاسفانه اینها هم تنهایند گساله بوفالو سیراب شده و از کنار رودخانه رفته اند و این گوساله جامانده است اکنون به دنبال مادرش می گردد. شیرها به دنبال شکار هستند گوساله همچنان می گردد. اما هرگز مادرش را پیدا نخواهد کرد. گله بوفالو یک حلقه حفاظتی به دور گوساله ضعیف تشکیل میداد. اما علاوه بر گوساله‌ها های بالغ نیز در امان نیستند. آثار زخم روی بدنشان این را ثابت می‌کند. زخم‌هایی که توسط شیرهای ایجاد شده است. شیر بوی بوفالو را حس کرده است. بوفالوها هم بوی شیر را حس کرده‌اند. مادر نمیخواهد خواهد گساله ضعیفش را تنها بگذارد شیرها گله بوفالو را دوره میکنند. آنها را ترسانده، پراکنده کرده و وادار به دویدن میکنند. سپس قربانی خود را نشان می کنند. هیچ راه فراری نیست امکان نجات وجود ندارد تعداد شیرها زیاد است وفالون نومیدانه عقب نشینی می کند. اما نوبت آنها هم خواهد رسید و وقتی زمانش برسد زمین از خشمشان به لرزه در می آیند. شیرها کاملا سیر شدند کفتارها بوی لاشه را حس کردند چند کرکاس زودتر خود را به لاشه رساندند اما مشکلی نیست. کفتارها تمام بقایای لاشه را تا آخر می‌خورند. گرمای شدید زمین را خوشکنده است شرایط زندگی برای بوفالوها دشوارتر شده است شرایان حیاتی آنها، آب، بسیار کمیاب شده کمبود آب یکی از دلایلی است که باعث می شود نرها از گله اصلی جدا شوند، اما دلیل اصلی نیست. هنگامی که بوفاله نر به بلوغ جنسی می رسند، نرهای موسنتر آنها را رقیب خود در تولید مثل دانسته و از گله بیرون می رانند. در گله بوفالو همیشه نرها برای کسب قدرت و حق تصاحب ها با یکدیگر درگیر می‌شوند این دو نر جوان میخواهند برتری خود را به دیگری ثابت کنند ضربه شاخ ها می می‌تواند باعث مرگ شود اما آنها قصد کشتن یکدیگر را ندارند آنها با تقلید از رفتار بزرگترها فقط برای آینده تمرین می کنند. علف ها کاملا خشک شدهاند. آب در پایین ترین سطح است و ارزش آن از همیشه بالاتر رفته. فیلها تحمل حضور هیچ کس را ندارند الگ بوفالو چاری جز رفتن ندارد این بوفالوی نر پیر همراه سایر نرها شرایط سختی را می‌گذراند بوفالوها باید بدنشان را خنک کنند قلتیدن در گل به خونک شدنشان کمک می آنها این کار را دوست دارند. این کار آنها را از پرتو سوزان خورشید و نیش حشرات محافظت می اما حق تقدم با بزرگتر هاست. وقتی نره مستند وارد می شود، باید فوری کنار رفت. وقتی آب کم باشد، باید با گل بدن را خنک کرد. در فصولی که آب کم می شود، بوفالوها به حوزچه های آلود روی نیاورند. البته اینجا مدعیان دیگری هم دارد. کرگدن ها هم میخواهند از اینجا استفاده کنند و وقتی کرگدن چیزی را بخواهد حتما آن را به دست می آورد نر چارهای جز ترک محل ندارد بوفاله ها بیشتر شب ها به چرا می روند. شیرها این را می دانند و با حوصل انتظار می کشند. این بار شیرهای نر هم به گروه شکار پیوستند. بوفاله ها از این خطر قافل هند. یکی از بوفالوها با فاصله ای از گله حرکت می این اشتباه بزرگی است. شیرها در انتظار فرصت مناسبند. بقیه بوفالوها خطر را حس کردند. بفالو نر کاملا تنها در گوشه ای گیر افتاده است <تصفيق> شیرها از تماس با شاه های تیز بوفالو به شدت پرهیز میکنند بفالو هیچ شانسی برای فرار ندارد بفالوی دیگر نعره دردمندانه هم نوعش را می شنود که بوفالوها ها برای نجاتش جلو می آید بقیه به او ملحق می شوند بوفالو زخمی اما زنده است گله بوفالو به شیرها حمله می کند امشب بوفالوها مرگ را فریب دادند و زمین از خشم آنها به لرزه درآمده است فصل خشک به اوج خود رسیده و بوفالوها مجبورند برای یافتن آب و علف 23 کیلومتر را زیر پا بگذارند. تنش در گله بوفالو بالا رفته. نرها تهاجمیتر تر شدند. هوا به شدت گرم است. این بوفالای نر به جای علف چیز دیگری برای خوردن یافته است. گلهای درخت سوسیس. درختی که میوه هایش به سوسیس شواهد دارند. فعلاً این نر جوان تنها مشغول چریدن است. و از آنجایی که نرهای موسنتر غالبا درگیری ایجاد می کنند، نرهای جوان ترجیح می دهند، تنها باشند. خوشبختانه هیچ تومخاری فعلا آن طرف ها نیست. هرچند بوفالو حیوانی درشت و قوی است، اما در برابر یک گله شیر توان مقاومت ندارد. هوا تغییر می کند. طبیعت قدرت خود را به نمایش می‌گذارد. آتش زیستگاه ها را نابود می کند اما در این حال راه را برای رویش گیاهان جدید باز می کند به زودی بارش باران آغاز می شود آسمان به وعده خود عمل می کند حوزچه های کوچک به برکه تبدیل می شوند و برکه ها به دریاچه رود به جرایان می افتند. و به تدریج بر قدرت جریان آب افزوده می شود. الافزارهای خشک از نو سبز می شوند. همه حیوانات مالا گرسنگی و تشنگی خود را رفع می کنند. بوفاله ها روزانه پنجاه لیتر آب می نوشند اکنون آب فراوان است تعدادی از بوفاله های نر به گله اصلی بازگشتند و آماده تولید مثلند اما نرهای دیگر به این راحتی های اجازه این کار را نمی دهند یافتن ماده های آماده تولید مثل آسان است برای این کار نرها فقط باید اطلاعات داخل هوا را رمز گشایی کنند. بوفالوهای نر و ماده هر دو شاخ دارند، اما شاخ ماده ها حدوداً 20 درصد کوچکتر است. طول شاخهای بوفالوی نر به یک متر میرسد، پایده شاخها به یکدیگر متصل و به صورت استخوان یک پارچه در است. رشد شاخها در هفت سالگی متوقف می شود بار دیگر علف و آب فراوان است گل هم فراوان است این بوفالوی نرپیر هنوز هم از گله نرها جدا است و تنها البته کاملا تنها نیست هرچند بوفالوها در مورد قلمروی خود چندان سخت گیر نیستند اما بوفالوهای پیر حضور مزاحم را کمتر تحمل میکنند مگر آنکه مزاحم یک كرگدن باشد علی بوفالو پس از چریدن ساعتی را به نشخار کردن می گزراند. درست مانند گاوهای اهلی، نشخار کردن بخشی از فرایند هزم در بوفالو است. موقع استراحت و نشخار کردن بوفالوها، اکس خار به سراغشان میآید این پرنده کنه ها را از روی پوست بوفالو پاک کرده و با آن جوجه های خود را تغذیه می کند این کار به تمیز کردن زخم بوفالو نیز کمک می کند. اما نک زدن زیاد به زخم باز می آنها را بدتر کند <تصفيق> کنهخار تنها موجودی نیست که به کنه علاقه دارد لاک پوشت ها نیز. کنه دوست دارند و وقتی بوفالوها در آب بدنشان را خنک میکنند از کنه هایشان تغذیه کنند. شاید بوفالوها آسود خاطر به نظر برسند اما در واقع اینطور نیست. چون خطر همیشه در کمین آن هست حیات وحش محیطی خشن و بیرحم است. اما بوفالوها مادامی که داخل گله هستند نسبتا در امانه بوفالوی پیر و تنها در امان نیست تنها بودن سرانجام برایش درد ساز شده است. بوفالو در یک جدال برابر می تواند از خود دفاع کند اما اکنون با یک گله شیر طرف است. ناگهان نعره بلند فیل شیرها را پراکنده می کند. اما شیرها دوباره بوفالو را دوره می کند عدم تمایل شیرها برای ورود به آب به کمک بوفالو میآید اما این وضع موقت است شیرها اگر مجبور شوند در آب هم بوفالو را تعقید می کنند بوفالو هم نمی تواند تا عبد داخل آب بماند شیرها هر قدر لازم باشد میتوانند صبر کنند. اما فیل دوباره به کمکش می آید از این فرصت استفاده کرده فرار می کند برای گله بوفالو تنها یک راه برای مقابله با مرگ وجود دارد. با آن تولید زندگی جدید است. این بوفالوهای ماده همه در ماهای مختلف بارداری هستند. اگر این گوساله بخواهد زنده بماند باید روی پاهایش بیستد. هر حسی بسیار حیاتی است. این لحظه حساس که در آن مرگ و زندگی در هم تنیده شده است، آشیپذیری تولد در حیات وحش را به خوبی به نمایش می‌گذارد. گله دوباره راه می افتد تقریبا همپای مادر حرکت می فعلا در همین حد کافی است گله صاحب نوزادان زیادی شده است اعضای جدید تلفات گله را جبران کرده و از افت تعدادان جلگیری می کنند تولد و مرگ پیوسته ادامه دارد این بوفالوی نر پیر در انتظار مرگ است با ادامه یافتن فست پرباران زندگی به روال عادی باز میگردد برای گله بوفالو هیچ چیز عوض نمی شود در این حال همه چیز تغییر می کند حدود یازده ماه دیگر گوساله‌های جدید متولد خواهند شد و تا یه همین مدت اعضایی از گله از بین خواهند رفت ظاهراً این گوساله تعمه بعدی شیرها خواهد بود شیرها گوساله را از گله جدا کردند اما گوساله تنها نیست در میانه درگیری ها گوساله از ناجیان خود جدا میافتد. اما بوفالوها او را تنها نمیگذارند فلوها دوباره فوران می کند. شیر به سزای عملش میرسد. زندگی به حال عادی باز می گردند. همه چیز عادی است و تعادل در طبیعت برقرار است. در شب فاجعه رخ می‌دهد. زندگی این گوساله بسیار کوتاه بود مادرش بسیار خشمگین است اما دیگر خیلی دیر شده همیشه همینطور است تا زمانی که شیرها همین دور برند بوفالوها هرگز روی آرامش را نخواهند دید زندگی برای آنها بسیار دشوار است دنیای بیرحمی است اما این تنها دنیایی است که میشناسند گله بوفالو بزرگ است و با وجود این طرفات به رشد خود ادامه میدهد پیوسته نوزادان جایگزین بوفالوهای تلف شده میشوند. شوند به رقم برهم خوردن آرامش و با وجود تحمل رنج های فراوان گله بوفالو به حیات خود ادامه می دهد